و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین عبل غاسم المصطفى محمد صل الله عليه و آله وسلم سيما نو و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي عليه بله نهطولله ال عدای مجموعین من الان اللاقیام یا او مین خوب امشب شب هفدهم ماه مبارک رمضان شب جنگ بدره و خدا رو شب بزرگیه شب هفدهم خدا رو به آوروی امام زمان در این شب عزیز قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید آمین همه ما رو ختم به خیر فرماید دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید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 ماه مبارک رمضان. یه شرح کوتاهیه بر موائز و فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبا علیه السلام نامه 31م نهجر بلاغه که شب‌های گذشته عرض کردم که این نامه مملو از جملات حکمت‌آمیز که امیرالمؤمنین برای فرزندشون تدارک دیدند و از اون حضرت به یادگار مونده در دنباله جملات این نامه امروز یه دو جمله از این نامه رو امشب مطرح میکنم جمله اول است که حضرت به فرزندشون میفرماین که با درل قبل ان تکون قصه این خیلی جمعه ارزشمندیه مخصم برا جوان ها یکی از گرفتاری های آدمی زاده که به پسرشون می فرماین که قدر فرصتو بدون قبل از این که از درس بره و قصه بخوری خیلی این جمله ارزشمندیه خلاصه این که آدم از فرصت ها حد اکثر استفاده رو بکنه یکی از این فرصت ها همین ماه مبارک رمزانه این آدم یکی از این فرصت ها همین شب 17 همه همین همی امشب بعضی دانشمندان امشب و شب قدر می شب 17 همه همین همی شب جنگ بد رو خود امشب شب بسیار بزرگیه پیامبر می‌فرمودن فرمودن یه جمعه از رسول خدا که اینم خب خیلی معروفه زیاد شنیدین که ان لربكم في ايام الدهركم نفخات این هر کسی تو عمرش یه فرصت های استثنایی براش پیش میاد همه براشون هست یعنی ان لربكم في ايام الدهركم نفخات نفخات فرصت های خیلی کم نزیر گویاسان غیر قابل تکرار بعد فرمودن الا فتعرذوا له آدم با معرفت آدم عارف بعد حواسش باشه که اونها رو از دست نده من دیگه فهمم مارم از اون الان نمی‌دونم تو این جلسه بود من اول ماه گفتم اگه کسی قدر این ماهو بدونه میتونه به اندازه یک عمر طولانی برای شب اول قبرش فقط تو این ماه توشه برداره اندازه یک عمر طولانی چون یه شب تو این حالا یه شب شب که حالا ما نمیگیم یه شب تو این ماه هست که از هزار ماه بهتر فقط یه شب خدا راجع به قدر میگه لیله القدر خیر من الف شر هزار ما تقریبا یه عمر طولانیه دیگه الان آدمایی که صد سال عمر میکنن اصلا تلویزیون میاره نشون میده این دیشب بود امشب بود یه آقای راوردن آوردن چهار سالش بود صد... این اصلا دیگه به عنوان معجزه میارن نشون میدن می‌گفتن این 148 سال ازدواجش بود که جشن گرفته بودند سال 82م ازدواجش رو خانمیشم شاید 5 سال 96 سالش بود هر دو زنده بودند یعنی میخوام اینا کسی الان 100 سال عمر کنه دیگه می‌برنش تلویزیون به عنوان یکی از معجزات یه سند زنده نشون می‌ده حالا ایکسی صد سال اوم کنه، پونزده سالش که تکلیف نیست، هشتاد و پنج سال تکلیفه، هزار ما تقریبا اون که دی، چه می‌گنی؟ یه شب قدر رو کسی قدرش رو بداند، به اندازه یه عمرت صد ساله می‌تونه توشه برده شب اول قدر داشته باشه تو یه شب. تازه خدا میگه بهتره نمیگه برابره نمیگه اون بالاتره شب قدر از هزار ماه بهتره علامه تبا تبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون میفرماین که اینجا هزار عدد تکثیره اصلا خدا نظرش هزار نیست میخواد مبالغه کنه به حضرت تاکسی من به شما میگم صد بار بهت گفتم به خرجت نرم این مبالغاته نمیخوام بگم صد بار گفتم صد و یه بار نگفتم شب یه جوری دیگه صحبت میکنم اعصابم خرد میشه میگم میگم به حضرت عباس هزار بار بهش گفتم گوش نده شما میگی آقا صبح گفتی صد بار که میگم آقا من که نه صد با هزار اینجا هیچ فرق نمیکنه اصلا فرق نمیکنه صبح گفتم صد بار گفتم به خرجش نرفت شب یه جا میگم به حضرت عباس هزار بار گفتم دوش نرفت چون میگه آقا صبح گفتی صد بار که اونجا صد و هزار فرق نمی کن بچه من به من میگه چند تا منو دوست داری میگم هزار تا هزار که نظرم نیز یعنی بینهایت بی میگه آقا هزار تا کمه میگم یه میلیون تا هیچ فرقی هزار یه میلیون یه دریلیون اینجا ازم فرق نمی کنه چون هدف مبالغه است خدا نمیخواد بگه که از هزار ماه بهتره. بعد یکی از پا منبر من بلند شه بگه آجا هزار و یک ماه چی؟ بگم نه دیگه به هزار و یک ماه زورش نمی این تا هزار ماه بردش. خنده دار هستن این اینو نمیخواد بگه. نمیخواد بگه از عمر روزگار یعنی اگه همه روزگار رو عمر کنی توشه برداری اون یه شب بهتره. این نفعات نیزاییم. اگه این نفعات نید چی هر هرکی تو عمرش از این چیزا هست. حالا یکی اون شب و مثلا میره برسن آقا چه بگم آقا میره تو صف محجونه. خب چی بگیم آقا دو یه سه ساعت تو صف محجونه میگه چقدر هم شلوغه. شب چون اون شب شلوقتره بگه. مثلا همه جا بگید شلوقتره. میگه من هر دفعه میامدم دو ساعته به میرسیده این دفعه الان سه ساعت دو ساعت اونو که میخوره میگه حالا ببرم یه جا آب زرش بدم اینو بشوره <تصفح> این حیف می اون شب و با... چه باید کرده اینو میگه میگه بابا این گیر نمیاد اصلا من دارم چی میگم تو چه میکنی فرصت اینجوری ار... یا یکی اصلا تو عمرش یه بار بعضی یه بار پیش میاد آقا تو عمرش یه شب جمعه مدینه کنار بقیه اصلا آقا این گیر نمیاد که من یه شام قریبان حضرت زهرا علت مدینه من بودم و یه شب شام غریبان بودن اون شب که بی بی رو تشییع میکنن شب تشییع هسته... است خدام شب تشییع است به این رفیقام گفتم بیاین بریم پشت خانه فاطمه بشینیم تا بیارن جنازه رو بیرون چون میدونید تشی جنازه از زهرا دعوتیه ایشکی هرکی خودش بره نبود که باز تشییع جنازه عمومی ام میگن فردو تشید نازه مثلا آیت الله از ما بهجت شما میری منم میرم عمومیه ولی مال بیبی بیبی بی اسمشون داده باشه داده بود و دا از تعمیر گفت فقط این هفت نفر میتونن بیان اینا باید بیان غیر اینا نمی. خب یه شب جمعه شما کنار دیوار بقی خوشت از هم یه از هم پیش نیاد اون شبا بری بخوابی بگی که میگن آقا ما تو شب بقی رو شب جمعه پشت دیوار بقی تو اونو به خواب میگذر یا شما ممکنه یه بار برات پیش بیاداخد یه شب جمعه کربلا باشه اصلا شاید دیگه نه نشه شد اصلا امراد دیگه کفاف نده شد بخوایم دفعه بعد بیای اجل امان نده خب بادم بعد اون شب چه بخونه میگه هر کی از اینا براش هست دیگه یا هر کی از اینا براش هست الو فتعرذو به الان انسان شب قدره. چون میدون شب قدر مهمه اون 23مه امثال به شب جمعه قرد انسان حالا اگه کسی امسال شب جمعه کربلا باشه اصلا سر از قرنش نذ دیگه ببین اصلا میدونید شب قدر چرا اینقدر ارزش دارد چون شب قدر دعای هیچ بنده ای رو خدا بر نمیگردونه مستجاب نمیکنه خب این شب خاصیت شب قدره که شب قدر درهای آسمان به رو بندگان بازه زیر قبه ما موسیم دعا مستجابه اون از زمان نظر مکان بعضی زمان ها دعا توش مستجابه بعضی مکان ها تو زمان ها شب قدره که دعا رد نمیشه اون مکان ها کجا فقط زیر قبه امام مثلا. جای دیگه نیست که دعا رد نمیشه حالا هم شب قدره هم زیر قبه نشسته هم شب جمعه است شب زیارتی و سینت علی حالا پیش اومده دیگه اونجا چی میخوای خوش باحال اونایی که میگن ما یه حاجت بیشتر نداریم و اونم فرج امام زمانو میخوام تجوج اینا خیلی قیمت دارن ها. اینا خیلی قیمت دارن. میگه مثل یه همچین جایی مگم, مگم، چی میخوای؟ همه چی فرامه میگه همه امام زمان بیاد میگه اینجا چون دعا مستجابه من فرج اون حضرت رو میخوام حالا قراز این هست پیامبر فرمودن هر کی تو عمرش از این فرصت ها هست بعد فرصت چند تا ویژگی داره یکی الفرست تمر و مر ها فرصت ها مثل حرکت ابرا ها از دست میرن فرصت زود از دست میرن یه رو به شما میگن که آقا شب جمعه هم به هم میزنی از دست میرن یه رو به شما میگن که آقا مسافر کربلایی سوار باشر اتوبوس اوتوبوس میشی بید. اما بخوای به خودت بیایی میرسید تهران یه روز میگن اول مارمزونه همون میخوای یه قردت گرم بشی میگن هیفده همه یه روز میگن شب عید فطره. آخ آخ آخ آخ, آخ تمام شد. تمام ال... چون ابرا خیلی سرعتشون زیاده. الفرست تمور رو من... فرصت خواب از دست میرن مثل حرکت ابرها. اینا سرعت های آور دارن. مزای این وقت میونه که اینا دو ساعت قبل تو لبنان هن، تو آسمان های مدیتلان هن، یک ساعت بعد میان. دفعه مثلا تو افغانستان تو هند. خیلی با سرعت حرکت می عمرم، عمرم فرصت هام اینجوری از دست می ده هرکی هم فرصت رو از دست بده تو سرش می زنه الفر... ازاعت الفرصه قصه نمیشه که آقا فرصت رو از دست بده قصه نخوره الان شما سالمی بعد قدر بدونی یه وقت منید رو تخت بیمارستانی میدنین تو سرت میکیم با سالم بودیم قط ندونست از دست میره الان جب و ناشب 17 همه اینقدر آدم هستن زیر خاک هستن اینا آرزو میکنن یه لحظه بیاننشون بالا خاک یه الهی الهفت بگن یه اوزخایی بکنن دیگه تموم شد از دست رفت میدنن تو سرش میگه که اون موقع که باید نه من یه حدیث زیبا به فرصت بخونه آتا اینا انقدر آقایون خونده شده گاهی اون عظمتش رو از دست داده بر اثر اینکه انقدر اینا تکرار شده تو جمهوری اصلاب یه هجابی نهاده اینا میگن هجاب کسرت اینو میگن من یه مثالی اگه مثلا پشه پنج تا پشه فقط بود و اینا رو هلند داشت مثلا <تصفيق> پنج تا پشه داشت اینا آقا اینا رو توی موزه نگه از همه دنیا میرسن تماشای اینا میگفتن یه چیزایی اینا دارن که یه گرم هم نیست پشه یه گرم هم نیست یه گرم, نیست. یه گرم خیلیه بین پشه ها یه گرم هم نیست ولی دو تا چشم داره بال داره پرواز میکنه میخوره مدفوع هم داره میبینه تشکیز هم نیست این ها و عغوله که خدا تو یه همچین چیزی این همه قدرت قرار ده ده. هر هرچی فیل داره اونم داره هرچی عقاب داره اونم داره از فیلم بالاتره تر فیل بال نداره اون بال هم داره. همین نمیم دیگه هم می دیگه چقدرا اینو میرن چقدر باش عکس یادگاری می چقدر عکس میگیرن میارن تو دهشون محلشون نشون میدم میگن اما این چون زیاده اصلا یه شکیه رو جرم سفر جو همه خورشید که میاد تو آسمان و کل کره زمین رو مثل روز روشن میکنه اگه این تو یه دهی فقط بود بودن یه نورفکنی هست تو این شهر میاد کل از همه دنیا می اون رو ببینن همون چون شما هر رو بلند می شین رو می بینید اصلا شما رو جرم این میگن می گرم هجاب کسرت. خیلی چه عجیبیه. اما خب ما رو ازش قافلی. حالا این حدیث اینجوری، اینجوریه. اقت... پیامبر فرمودن اقتنم خمس قبل خمس. پنج چیز رو قبل از پنج چیز قنیمت بشمور استفاده کن. جوانی رو قبل از این که پیر بشه. من مثلا هیچ جوری آقا برای جوانان نمیتونم جا بندازم. که این جوانی چه نعمه. نرهت هم نشن. هم زیاد پای صحبت من. چون جوانی یعنی مصدی. مصدی جوانی. جوان نمی نمیفهمه. مگه پیر بشه، سوست بشه، درد ها بیاد صحبت میگه اوه اجب. این عجب نعمتی بود این جوانی. خدا رحمت کنه آستدی آقای میرهادی رو. مناجات میکرد این شب ها خوشی داشت. می گفت خدای اون موقع که جوان بودم تو رو نشناختم جاهای دیگه عمرم گذشته. هی، هی، هی، حیف خدا هی که ما تو جوانی با خدا عاشقا نشد. که موقعی جوان بودم مست بودم. اصلا نمیفهمیدم. جوون جوان آقای وقت حیعتم میره مستا. اومده رفیقش رو ببینه. اصلاً نمی کجا. میگه خدا کنه فلانی هم اومده باشه یه حالی باشه. آبا فلانی رو ولش کن بیا یه در قدر خونه خدایی یه الله بکن همه شما آقا داریم ما دعا میخوایم اون داریم نگام کنیم رفیقش آمده یه یعنی. ما با ولش کن اگه نه اومده باشه پکر میشه میگه حیف این هم اومده این هم نه اومده حیف شد حیف شد اومدی به تو هم... نه اصلا نمی‌فهمه. اون موقع که ما جوان بودیم میگفت خدای تو رو نشنخ حالا که پیر شدیم می گفت با تو آشنا شدیم دیگه خالی نداریم سلامتی رفت به خدا آقا پیر که دیگه ازم محتاجه مثلا میخواد بره مشهد مشد محتاج بچه ها میگه که منو میبریم قوم میبریم اونهای ناز میکنم یعنی ما گرفتاریم، نمیتونیم حالا بزار بینیم عید باشه تعطیل باشه میخواد روزه بگیره دیابت داره میخواد نماز شب خونه سسته، پادر دارد، مریضی،, مریضی ها حجوم آوردن دیگه. بگم اون که جوان بودیم، تو رو نشناختیم، حالا هم که پیر شدیم، با تو آشنا شدیم، حالی نیست. باید یه دفعه حال داشت از اون مناجاتکنهای عجیب بود و یه دفعه بغزش میده، این عشق و میری لباساش. می گفت خدایا ما پیرو پاتالا رو مجانی ببر <تصفيق> شطور دیدی ندیدی گفت دیگه از همون کار ما رو نمیتونیم یه روز روزه بگیریم میگیم به خاطر این روزه مون ما رو ببر مریضیم نمیتونیم. ما رو مجانی ببرش جوونی رو قدر جوون پیاده میره کربلا برو جوون آقا میتونه رجب روزه بگیره شعبان روزه بگیره جوانی است عشق جوانیست. نیروی جوانیست. پیر که نداره که. فراغ که قب... قبل شغلک. فراغت تو قدرشو بدون قبل این گرفتار بشی. حالا شما مثلا فراغت داشته این بعضی آقا انقدر گرفتارن. اصلا نمیتونی یه شب. خدا شایده میگه آقا 17 شب اونجا یه شب من نتونستم بیام. گرفتاره بچهش ملیزه و دخترش داره طلاق میگیره اصلا انقدر گرفتاری ها هجوم بهشا میگه اصلا من نمیتونم یه نماز دوستایی بکنم اما شما فراغت داری خدا به شما فراغت قدر اینو بدون یه روز تو همونجوری گرفتار میشی میگیره نمیتونم اون موقع که فراغت داشتم قدر ندونستم حالا گرفتار داری, داری. قنا کرد بی نیازی تو قبل فقرک بی نیازی هم همش پولی نیست ها نه نه حالا پولی هم داریم اما فقط پولی نیست حالا شما خودت میتونی بیای به ایت الاسم بعضی آقا دیگه افتاده شدن ویلچری شدن بچه هاشون برد بیارن دیگه نمی بچه هم نمیتونی بچه هم نمیم بگم با ما ویلکم گیر میدید هر شب ما رو بیاری. شما الان بخوای میرین نماز جماعت بعد بعد یعنی آقا نمیتونن دستشویی برن بعد بچه هاشون اینقدر محتاج شده که نمادش هم میخواد بخونه بعد بچه بیان وزوش بدن قصدش بدن دستشویی ببرن نشت آبش بکشن خب حالا که آقا تو ف... تو بی نیازی خودت میتونی کربلا بری خودت میتونی مشد بری خودت میتونی روزه بگیری قدر اینو بدون یه رو تو هم به اون روز میفتی حیات که قبل موتک تا زنده ای قبل از اینکه زیر خاک بدین خیلی الان زیر خاک حالا اون که تو خونه هم افتاده بالاخره الان تو خونه افتاده نمیتونه هیچ کاری بکنه یه سلامات که میتونه یه دونه یا الله که بالاخره اون باز میتونه یه کاری بکنه همونجوری که خابیده زمین داره گریه میکنه میگه خدایا بالاخره هنوز در تجارت خونه براش بازه بعضی همی اندازم هم زیر خاک هم. این جوانی رو قبل از اینکه پیر بشی زندگی رو صحت که قبل از صقمک سلامتی رو قبل از اینکه تخت بیمارشی میدرمانی بشی دردها به تو جون بیاد اینا استفاده از فرصت یه جمله خود از امیرالمومنین بگم خیلی شنیدنیه ما مذا، ما فرید شنیدنیه جوان اونی که رفت دیگه از دست رفت این 17 روز 16 روز مارمز اون دیگه از دست این دیگه بر نمیگرده گریه کنی بر نمیگرده تو سرت این رفت پنجه سال عمرت رفت دیگه کارش نمیده ما فاتم مذا و ما سیعتی فعینه ینی هم که در آینده میخواد بیاد چه تضمینی است که ما ببینیم ما از کجا معلوم آقا ما ما را از اون سال بعدو ببینیم <تصفيق> واقعا از کجا من کی اصلا جنونم میتونه آقا اینجا تضمین کنه من ما از اون سال بعد هستم هر کی میتونه باشه بگه, بگه من من ضمانت میکنم ما از اون سال بعد هستم بچه هم میتونه بگه ما نمی دونیم اصلا شما میگین تضمین کنی عید فطر امسال هستی حالا شما میتونی ضمانت کنی شب قدر هستی میگه من شب 19ام هستم انزام میدم نمیتونی اونی که میخواد در آینده بیاد کی دیده اونی هم که گذشته که از دست رفته همین چه میکنه وقت من فرصه بین الادمان میگه این فرصت همین امشب و قدر بدون بین دو تا ادم این گذشته عدم شده آیندهم که معنی بد در امشب و قد بدون نگو آقا من ان شاء الله ایش آقا نگید من ان شب 19ام میام حرفامو شب 19ام میزنم نه همین امشب بزنم چون شب بزن. شد شب 19 در کار نموشه همه همین امشب ببو آخرین حرفات بخدان چقدر تو روایات به ما گفتن هر وقت نماز میخونی بگو این آخرین نمازمه نه قول اینو میخونیم امشب شب جمعی نماز باحال میکنم نه همینو باحال بخو، می‌ن. هر موقع کربلا میری بگو این آخرین سفر کربلا می‌ن. نه قول ایشالا سفرای بعد نه نه. انقدر ما گفتن سفرهای بعد بنا نشده به این توجه می‌برم. به خودت بگو امشب آ... امسال آخرین مرا مزونم امشب شب آخر مارم را اونیه که من شما الان اگه بگن آقا امشب شب چه چجوری حرف میزنی؟ <تصفح> من واقعا اگه به شما میگن آقا امشب شب آخرت چند ساعت بیشتر از عمرت چجوری با خدا حرف میزنی؟ چه حرف هایی میزنی؟ وقتنم الفرس بین الادمین صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق عارف صوفی اینجا منزش عارفه عارف آقا همین دم و غنیمت میشماره نیست فردا گفتن از شرط طریق هیچ عارفی نمیگه من فردا نه نه میگه فردا رو چی دیده هر کاری میخوام بکنم همیم شب میکنم تو <تصفح> مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسیه خیزت نیستی میگه اینقدر آدم فرصت براشون بود چون حواله با آینده کردن از دستشون رفت امشب همه چی آماده بود واسطه بود میتونست کارو تمام کنه، اما چون حواله با آینده کرد کفش رفت. و آینده ایران درک نکرد به خاطر این عزت امیر می‌فرماید دم رو قنیمت بشمار بین دو آدم. دیگه الان من اگه چاسه بدید من زیاد راجع به این چون این جمله امیر رو خیلی عرضش من دیدم زیاد راجع بهش مطلب نوشتم اما دیگه حالا به همین اکتفا میکنم جمله بعدی بیان علت اینه که میگه من چرا اندر میگم فرصت و غنیمت بشون میپنم من پسرم لیس کل طالب یوسیب نه هر طالبی به خواستش میرسد نه خیلی ها طالب هم اما زمینش نیست زمینش رو از مثلا یه کسی آقا یه دفعه به سرش میفته بره حوزه قم ام مجتهد شه خب جوانی رفته دیگه پیر شده دیگه یاد نمیگیره ذنش نمیمونه میگه اینجوری نیست که آدمی هر وقت اراده کنه به خواستش میرسد نه زمین زمیناماش از بین رفته یه اد تو پیری به سرشون میفته که روزه بگیرن خب دیگه دیابت اومده اصلا نه. فرصته میگه نه فرصتات اثر میگه خیال نکنی هر وقت بخوای میتونی بریزی حالا که زمینش هست میتونی بری یه وقتی میخوای دیگه زمینش نیست آره آنی می یه شما میخوای میخوای روزه بگیری میگه می سلامتی نیست یه وقت میخوای نماز شب بخونی میبینی که دیگه توانش نیست یه وقت میخوای کربلا پیاده بری میبینی که دیگه ویلچری شدید از همیشه که نیست میفهمت لیسا کل طالبن یسی اینطوری نیست که تو خیال کنی هر وقت تو اراده کنی زمین آشن بر تو فرامن باشد میخواد بگه که حسن جان حالا که جوانی هست قطعش رو بتونه تو رو میکنه همیشه که این شرایط نیست یه وقت میخوای زیر خاکی چی میگه؟ ام دیگه نیست یه وقت میخوای یه دونه الله بگی دیگه ام دیو باقی نمی‌شه امشب شب 17 هم سه هزار و سه منقبت بر مولای ما امیر المومنی اصلا قیامت کرد امیر میشه شب. شب جنگ بدر بود تاریخ میگد کبیر هم که کبیر رفتن میدوند کبیر شبای خیلی سرد داره روزای خیلی گرم همین نجف هلا اینطوریه نجف بعضی وقتا روزاش از گرمادم آدم رو به هلاکت میره همون شر سهرش دیگه شما با پالتو با با هرچی که بیای تو استخون سرما نفوز میکنی ما هر دیدم. یعنی روز از گرما یه دونه پیرن هم همجور عرق میریزی. شب از سرما دو تا پالتو هم به یخ میکنی میگن شب جنگ بدر شب بسیار سردی بود محتابم نبود تاریک تاریک قرآن میفرماید اگر بیابون محتاب نباشه این آیه قرآنه میگه کسی اگه دستشو بیاره بیرون دست خودشو نمیبینه ما هم دیدیم تو بیابون آقا من واقعا اینو امتحان کردم دیدم دست خودم رو نمیتونم ببینم شبیه که مهتاب نیست بیابون آ اینجا هم نوره چراغ لامپه اینجا نمیشه اینا رو امتحان کرد اگر محتاب نباشه دست خودشو نمیبینه اذا اخرج يده لم یک یراها آیه قرآن شبه میگن بسیار تاریک بسیار سرد اصحاب هم هی میومدن به پیغمبر اکرم میگفتن که ما خیلی تش نمونه عطش دیگه داره بیتاب میکنه. حضرت میگو یکی بره این چاهای بعد چاه بود دیگه این چاهای بعد آب بیاره از شدت سقمش کی از قیمه بیاد بیرون و اون تاریخی مولای ما امیرالمومنین بلند شد همین کاری که عباس کرد کربلا همین همون نقشی رو که امیرالمومنین تو نهزت پیغمبر داشت همون نقش رو عباس برای امام داشت کاش کربن کرب ان رسول الله همین امیرالمومنین عباس هم اون حقا بود حضرت اومد خیلی هم هوا سرد بود تناب و اینام نداشت فقط مشک داشت اومد سر چاه بعد رفت تو چاه تمام این مشکا رو پر آب کرد خیلی هم اومدنش طول کشی وقتی اومد گفت علی جان خیلی دیر اومدی حضرت اومد، وقتی اومدم از چاه بیرون خواستم برگردم یه طوفانی اومد که همه چی رو می برد گفت من با این مشکا زمین رو چسبیده بودم که مشکار نبره منم نبره سه بار گفت این طوفان اومد هر کدوم این ساعتی طول کشید تا اثر من رد شد حضرت فهموندن اونا رو نش ناخته شناخته بود گفت شما بگین بهتره گفت من بگم میگم برای خودش فضیلت درست میکنه داره. شما بگین بهتره گفت اولی جبریل بود با هزار ملک آمد به تو سلام کن سه هزار رو سه من قبط برای مولای ما مولا. امیرال اولی جبرئیل با هزار ملک بعد فرمودن دومی میکائیل بود با هزار ملک اومد به تو سلام کرد. سومی اسرافیل بود با هزار ملک اومد به تو سلام کرد. آب به کیا میداد برای کیا آب آورده بود من روم نمیشه بگم کیا از اس نورم بتری اما کسی برای سکینه آب بیاره <تصفيق> اگه کسی برای اسقر بره آب بیاره اگه کسی بر زینب بره آب بیاره با یه دونه دیگه بگم سرد بود قبول دارم تاریک بود اما دستش که قطع نکردن به چشش که تیر ندادن به سرش که عمود ندادم. شما از اینجا ببین که از اینجا ببین که اون س... این سقایته اونم سقایته اما سه هزار و سه من امشب برای مولای ما امیر المومنی. دیگه یک کلمه هم ذکر مصیبت کنم شب شنبه گفته یا جد داشت شب و روز من بر تو گریم. شب و روز گریه میکنم جب اونا معناش این یه بار صبح گریه میکنم یه بار شب نه شما به من میگین چی کار میگم شب و روز خونه دل میخورم شب و روز قصه میخورم شب و روز میدوهم شب و روز ز... یعنی کارم اینه خیلی عجیب هست هزار و دیویس سال امام زمان میگه من شب و روز دارم گریه میکنم بعد میترسم عشق چشمم خوشه خود چقدر آدم میتوند گریه کند اما میگه اگه اشک چشمم خوشه خون گریه میکنن بدلت دموعه دماغ حالا به امام زمان بگیم شما برا کدوم عجیب آیان برا کدوم مسیبت میگه اون لحظه ای که اسب بی صاحب حسین به حرم برگش چون امام مکرر می اومد با این زن و بچه غدا می کن خب یه اینا زن و بچه دار بود دیگه به من اگه بگن اعظم مسیبات اماموس این چی بوده من میگم این ناموسش همراش خب ب... به من میگن آقا به نظر تو این هم روز روزه خوندی بالاترین مصیبت برای میگم این دخترش همراش بود خیلی سخته خیلی سخته آقا جلو دختر بابا رو بزنه خیلی سخت جلو خواهر تعروزه به برادر بخورد. امام زن و بچه دار بود. یه مقدار که اینا عبارت مقتل آبق. یه مقدار که می دوباره بر می همه اینا رو جمع می کرد. نوازش میکرد. کرد. اینا یه دفعه که نمی از من دل بکنن. آماده شون من نمیدونم امام چند بار رفت چند بار اومد. ولی می مکرر رفت مکرر اومد. علامه متحری تو همین مختلش تو همین هماسه حسینی میگه اینا فهمیدن راهو بستن که امام زیاد نتونه بر گوه امام دوتا تپه پیدا کرد عجیب هایی دلش میسوزه برای این مد جای بلند پیدا کرد گوه میره بالا اون بلندی وای نیستاد، همینجور دعات میزد به سمت خیما لا حول ولا قوته لا بلا اینا میامدن از حرم اینا اون بالا تموزنه خوشحال میشدم بعدشون دست تک می داده. بعد یه مقدار میره بالا اون بلندی دو تا تپه میکن گو... دوباره اونجا صدا میزد لا حولا ولا لااق و تعله الله. میگه اما اما دلها بسوزه برای اون لحظه ای که اسب بی صاح هی صدا میزد از زلیمه از زلیمه تا شیه این اسب شده. همه این زن و بچه از خیمه اومدند؟ بید 84 تا بود همه ریختم گفتم قنیمت مدتی نیومده از بالا تپاها بوده حالا دیگه صدا عصبش میاد سرازینه اومدن بید. اما این بار دیدن زین زلجناه و آجگون یال زلجناه قرده عصبی صاحب هرکی یه چیزی یه خانمی اومد صدا زد سالار ما رو چه کردیم یکی میگف بابای ما چه شد یکی میگف برادرم اما امام هیچ کدوم اینا میگه سکینه قیامت کرد اومد دستار انداخت کردن اسب آتفه اسب رو به دست گرفت گفت زل من میدونم بابام شهید شده بابامو کشتم اما بابام وقتی میدون میرفت تشنه بود. این لبهای های مثل دو تا چوب خشک به هم همینقدر به من بگو آبش دادن یا بالب تشنه سر از بدنش هل سقی عبی ام قتل این عصف از خجالت خودشو از دست سکینه خلاص کرد اینو رو کن خیلی جانسوزه از جلو جلو میره. هشتاد و زن و بچه هم دنبالش رو هی به هم می این الان میخواد ما رو ببره پیش اماموسه اینا رو آورد تو گودال قتلگاه اما خودش رفت کنار گودال انقدر سرش رو زمین تا چونه هی این سرش رو کوبید یه وقتی دیدن اسب افتاد سؤال رو از زلجناه کرد سکینه اما میگه جوابو از هلغوم بریده بابا میشونید و همه اومدم هلغومش رو ببوسم دیدم به من میگه دخترم سلام منو به شیعانم برسیم به بو هر جا آب خونکی میخورن لبهای تشمیرمونوی هستن. شیعتی مهماش شربتم ما از بین فزکرونیم. او سمهتون به قتیلن او اثیرن سندوبونین.